درود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجریان عزیز و گرامی تلویزیون رنگ کمان بخش 23 گفتارم در مورد کسوی را شروع می‌کنم. قبل از شروع توضیحی باید بدم در مورد بخش 22 شروع بختانه یک مشکل تکنیکی موجب شده که بخش بیست دوم ما قابل استفاده نباشه و به همین دلیل تصمیم بر این شد که ما در بخش بیست و سوم مطالبی که در بخش بیست دوم مطرح شده است در اینجا بازگو کنیم تا بینندگان گرامی آنان که علاقه مندن بتونن بر آنچه که گذاشته بر کسروی آگاه بشن به ویژه ما در مقتعی از زندگی کستوی هستیم که برایش خیلی مهم بود از عدلیه آمده بیرون و کار جدیدی شروع کرده و خواهم کرد به مبارزات اجتماعی خیش از این تاریخ به بعد میپردازیم در گذشت گفتم کستوی زمانی که از عدلیه آمد بیرون سال 1309 بود در سال 1309 ما نشیاتی کتابهایی از وی داشتیم ولی 1310 با کمال تعجب از کسروی هیچ خبری نیست کسروی که مدام در حال نوشتن و گفتن است هیچ خبری در یک سال 1310 وجود نداره نه نوشته نه گفتار به تصور بنده این فقط تصوره کاساوی در این تاریخ به دنبال حرفه جدید بود، معیشت جدید زندگیش بود. از ادلیه اومده بیرون، دفتری داشت، دفتر وکالت که تعطیل نکرده بود، در گزارش داشتم حضورتون. ولی مجوز وکالت رو باید ادلیگه میداد و متاسفانه هم ادلیه هم دربار با کاساوی در جدال بودند. بویژه در عدلیه داور مخالف کسوی شده بود بنابراین اجازه مجوز به این صادقی نمیدادند. از بخت نیک کسوی در 1311 داور به خاطر مسئله نفت دارسی از کشور آزم اروپا شد و در خیاب داور جانشین وی، معاون وی با آقای نامی که با کسوی هم دوست بود، رفیق بود، این مجوزو به کسوی داد، به لاخره کسوی از سال 1311 شروع کرد کار جدید خودش رو، یعنی وکالت امور کشور رو اجرا کرد. زندگیش رو از این تاریخ گذاروند. و همین از سال 1311 است که ما می میبینیم که دوباره کسوی شروع کرده به گفتار، به نوشتار، به مبارزات روزانه بر علیه فساد. اگر در گذشته فساد فقط در مورد عبدلغه بود، چارشوب عبدلغه با دزدان، با دروغگویان، با قاتلان، ولی حالا مبارزه کسوی در تمام سطح کشور است. پایه مبارزاتش تا سال 1320 کستوی پایش اصلاح دینه پایش عرض می‌کنم کنم گاه در موارد دیگر هم وارد مبارزه شده همونطوری که عرض کردم حضورتون کستوی از تاریخ شهریوره 1320 که رزاشاه از مملکت به یک مسافرت اجباری رفت و مملکت به هم خورد آزادی های اجتماعی، آزادی های دینی در این حال بلبشو، آناشتیست به ویژه آزادی های دینی و گفتارهایی که پیش می و در این گفتارها مسائل فراوانی مطرح می شد آزاد شد، حضب توده به وجود اومد و احزاب دیگر کسزوی هم از این تاریخ بعد در چهار گوشه جامعه به مبارزه پرداخت و همین مبارزش بود که آخر سر هم زندگی او را نابود به نابودی کشونید و هر حال در این تاریخ ارس کردن در سال 1311 کسروی هنوز مسلمانه کسروی همانند فقیه مدرتمندیست است که علم فقه اسلام و تشیعه را در نهایتش بلده و یک مسلمان کامل است به عنوان مثال گفتم ارز کردم که روزنامه خدمت رو ارز که روزنامه پیمان رو از اول آذر 1312 منتشر می و تا سال 1322 ده سال 11 سال روزنامه پیمان رو منتشر کرده ما در این سخنانمون هدف ما دنباله تولات فکری کویش تولات فکری کوی رو گفتم در گذشته. از کجا میدونیم از طرفی نشر معتبر پیمان رو پخش میکنه؟ ماهی یک نسخه و تمام اغلب مطالبش رو خودش می نویسه. از طرف دیگه مدا در حال کتاب نش... منتشر کردنه و ما با مطالعات این دو مطلب به این مثلا به نتیجه می رسیم که کدییت فکری کصوی به چه نحوی؟ پیش رفته چطور شد یک از در سال 1311 یک مسلمان محضه در سال 1324 قبل از قتلش انسان روشن است که تمام اسلام و تشییر را زیر سوال برده البته این رو در کنارش بگم که کس هرگز از اسلام جدا نشد به اسلام معتقد بود به پیغمبر نبهمون همان نهادی که ماها معتقدیم پیروان معتقدند به پیغمبر پیغمبر معتقد بود ولی با اضافه های دین با اضافه شده های دین و مذهب شیعه شدت مخالفت میکرد به هر حال از اینکه کسی چند دوزه در این تاریخ تاریخ از آرزوی سده 12 تا متدن به دین اسلام معتقده در نشریه پیمان سال یک گم شماره یادهم اردی بهشت یا به اون سال ۱۳۳ می نویسد که یکی از فوزونی های اسلام است که کتابی از خود پیغمبر آن در دست هست و این است که بنیاد آن همیشه استوار و برفااست در ادامه تایید دین و اسلام و قرآن میگوید در سال بعد 1314 جهانیان را به دین نوی نیاز نیست دین نه چیزیست که که کهنه و نو گردد چون این چیزی چگونه کهنه و نو گردد متوجه هستیم که به قرآن معتقده خواهیم دید در آینده در سخنان آینده که به قرآن ایراد میگیره که سخن خدا نیست حتی به پیغمبرم ایراد میگیره و میگوید که قرآن را که نوشته اشتباهات فراوانی در قرآن بوده بنابراین معتقده که قرآن پیغمبر هم مثل تمام انسانها یک انسان عادی بوده که به کار اصلاحگری فرداخته در ادامه تایید قرآن ما میبینیم در همون تاریخ 1314 14 در نسی پیمان سال 3 شماره اول باز می‌نویسه که آن دین کوهنی که همه پیغمبران بر سر آن ایستادند و اینک نامه درست آخرین آن قرآن در دست ماست امروز هم همان خواهد بود راستی که از رنگ سخنانش کلام خمینی پیداست کلامی که 43 سال تمام کشور ما را به نابودی کشنده و آخرش هم معلوم نیست که به کجا می به هر حاله و باز یک سال بعد در پیمان سال سوام شماره ده آزر ماه 1315 در تایید قرآن می گوید که جمله های قرآن استوار و شیباست آراسته و زیباست خب نتیجه میگیریم که در این تاریخ کستنی در بست مدافع دین و قرآن و پیغمبر و تشییر هست ولی در سال 1300 ولی در سال 1319 در پیمان سال 6 شماره 9م تایید میکنم این تکرار میکنم این رفرنس ها را که کسانی که دوست داشتن به سراغشان برن, برن و مطالعه بفرمایند در پیمان سال 6 شماره 9م آذر 1319 ببینید چند اندازه فرق کرده ما میخوانیم می مینویسه جز خدا کسی را در دین جایگاهی نیست هرگز نتوان نام کسی را چه پیغمبر و چه دیگران با نام خدا همراه گردانید به نقد میکشه تمام کسانی را که به پیغمبر موجز قائلند عرض میکنم بزرگتون. می مینویسد که در باره ادعای پیغمبری خوش... خیشم خوب گستری ادعای پیغمبری داشت این حرفی نیست ولی این ادعای پیغمبری چه کسانی که نمیشناسن نااگاه میگن و چه کسانی که میشناسن با کینه میگن و یا افرادی که مطالعه کردن متوجه نشدن فرق میکنه با پیغمبری که پیروان امت عدیان دیگر در مغزشون پربرش کسروی پیغمبر رو یک ای آدم معمودی میشناسه و معتقده هر کسی که اصلاحات رو به افته بگیره در جامعه به امور به امور اصلاحی مشغول بشه خداوند کمک میکنه تا بتونه در اصلاح جامعه موفق بشه به خداوند اعتقاد داره باز نه به سبکی که خواهم رسید دیگران میگویند بندوان خالق دنیا خالق طبیعت معتقده و پیغمبر رانیز از این دید میبینه می نویسد که کیش‌ها در هر باره آموزاک های بیخردانه داشتن آموزاک ها یعنی آموزش ها. و در هر باره مردم را از حقایق دور جدانیدند ببینید تا کجا رسیده جدال با تیش جدال با ادیان جدال با مذاهب. پیروان دین ها که خدا را همچون یک فرمان روای خودکامه بنداشته دین را جز آینی به پرستش به اونه می شمارند یعنی حتی خداوند را هم از پر... بسلا برای پرستش خداوند هم عقیده نداره و برنگیشتگان پیغمبران نیست از گوهر و آفرینش بالاتر از دیگران دانسته و در زیر دست خدا جای می دهند به این نافهمی های خود می آن را که کار و راه کار یک برنگیخته نیز دانسته و چونین هر چی توانت کرد و هر چی توانت گفت منظورش در این است که یک کمی جمعه مخلوطه من منظورش بر این است که به پیغمبرم اعتقاد العاده دارن حالا در آخر تاکید میکنه. در پیش آنان در پیش امت برنگیخته یعنی پیغمبر برنگیخته یک قانونگزار خودکامه است در پیش آنان برانگیخته یک قانونگزار خودکامه است کسی پ... که پیغمبره خود از خودش میاد قانون میگذاره و ادامه میدهد که نشام پیغمبری نیست از دیدگاه مردم عامی با که باید مرد زندگرداند از سنگ شطور در بیاورد با جانوران سخنگوگد از نابوده ها آگاهی دهد از میان انگشتان چشم روان گرداند و به کارهای این گونه برخیزد درست نیست و ای ادامه میدهد از همه شگفتر کار مسلمانان است که در کتاب‌هایشان صد نتوانستنی یاد می‌کنند یعنی موجزه صدها موجزه یاد می‌کنند. از قبیله به امامانشون به پیغمبرشون نسبت میدان از قبیل ماه را دونیم گردانید از میان انگشتانش چشم روان ساخت از سنگ شطر بیرون آورد به آسمان به دیدن خدا رفت آفتاب را پس از فرو رفتن بازگردانی با سوس سخن گفت و از آینده آگاهی داد در جایی که در قرآن آن پاکمرد عرب منصورش پیغنبره از نتوانستنی یعنی از معجزه بیزاری نموده و هر زمان که چون این کاری از او تلبیده اند آشکارا گفته نتوانم کسروی بنابراین به معجزه پیغمبر امامان معتقد نیست به خدا معجزشم معتقد نیست خواهیم دید می نویسد که خدا کاری رو که بی خود نمی کند سر لازم می کند به خاطر به خاطر به خاطر دیگران کاری رو انجام نمیداد ولی به هر حال پیغمبر را به انوان اصلاح طلب میش مرد و میگوید پیغمبرم افرادیست مثل ما مینویسد کسانی میگویند یک برنگی را چگونه میتوان شناخت میگوییم دیگر چیزها را چگونه میشناسید یک دانشمند را چگونه میشناسید یک پزشک را چگونه میشناسید بنابراین متوجه میشدید که کسزوی میگوید که یک فیلسوف، یک پزشک، یک دانشمند و یک اصلاحگرها در یک سطح و اگر ادعای پیغمبری میکنه تعریفش از پیغمبر چون است این در اینکه بگوید من پیغمبری هستم بر اساس تعریف اومن که خودش خودشون رو اصاف قبول نکردنی بهشون میدن همچنین در همین تاریخ کستری در مورد به اداعی پیغمبری خودش دوباره تکرار میکنه میگوید کسانی میگویند شما دردی پیغمبری میکنید میگویم بارها پاسخ این را دادم شما بسیار میخواهید که دستاویزی پیدا کنید و بی دانه به چخش یعنی هایهوی چخش و هایهوی پردازید ولی ما را از آن سودی نتواند بود شما بگویید پیغمبری چیست اگر آن است که فرشته از آسمان آید و با خدا همواره پرسش و پاسخ رود و پرده از میان برخیزد من از چون این چیزی ناآگاهم هم بنابراین اون چیزی که میگن پیغمبر میرود در غار و می میارد و پیغام خدا را میآورد هیچ کدوم از اونها رو گرسلی قبول نداره ادامه میدهد چون این کاری نبوده و نخواهد بود من میگویم به این راه با خواست خدا و به راهنمایی او برخواستم و این از یک سخنی به ناراست نگفتم میگویم این راه یگان راهی است که مردمان را به راستگاری توانده این مطلب در پیمان سال هفتم اردیبهشت 1321 شماره هشتم صفحه 489 نتیجه میگیرم کستوی از سال 1311 از سال به انوان یک مسلمان کامل یک فقیه کامل برخواسته مبارزش شروع کرده و در زمان به نتایجی رسیده به نتایج مثبت رسیده مطالعاتش امیق بوده کسی تمام اغلب کتابهای گذشتگان ایرانی را خانده بود کسی کتابهای آخونزاده را خونده بود کسی طبیه کتابهای طالبوف را خونده بود کسی کتابهای ف... ویسا فلسفی اروپایی رو خونده بود به هر چیزی که میخوان با... به قول خودش با خرد خودش با تفسیر خودش با تجزیه و تحلیل خودش افکارش رو اصلاح میکرد کسی نبود که در همون مکان, مکان خودش بیستد و در همون مکان... مکان هم بمیرد باز برمیگردم این بار در مورد شیعی دریه کستانی. صحبت بکنم ببینیم در این مورد سخن از پیغمبر بود حالا ببینیم در مورد شیعه کسی تصورات چی کنست در سال 1312 شروع کارهای مبارزاتیش در پیمان شماره هشتم از سال در حمایت از تشیعه تشیعه ایرانیان می نویسد اما شیعهگری ایرانیان چون اومدیان و عباسیان به دستاویز خیشاوندی با پیغمبر اسلام به خلافت نشسته و علویان را که به پیغمبر نزدیکتر از آنان بودند و در پارسایی و دانشمندی هم برتری داشتند سخت نیازوردند، غیرت ایرانیان این بیدادگری را بر برنتافته و هواداری از علویان مینمودند و این بود که به شیع گری معروف گردیدند. تماماً در بست تشریع رو قبول میکنه و یکی از کچه که به عنوان یک ایرانی افتخار می کند که ایرانیان چون این کارها رو کردن و تشریع رو برقرار ساختن در ایران این از یک طرف باز در حمایت از همون تشریع و اسلام می و برای افتخار خیشتن میگوید جهان هر حالی را که پیدا کند و در ایران هر گونه حادثهی که روی دهد سیزده قرن بیشتر که ایران پیروه دین اسلام بوده فراموش نخواهد کرد این سرفرازی ایران است که قرنهای درازی با چون این دین پاکی نسر داده است. این در سالهای اول زندگیش که گفتیم و متأسفانه پیش درست از آب درآمد آمد ایرانی اسلام رو ترک نکردن و بالاخره حکومتی به این نام در مملکت ما و قرار کردم حال رو در سال 120 گستری تحولات فکریش به کجا رسیده در موردشیه می هیچ تردیدی نیست که جهان باید با دین زندگی کند ولی باید دین را هم معنی کرد معنی درست, درست دین شناختن معنی جهان و زندگانی و پی بردن به گوهر آدمیگری و زیستن با یک آین به خردانه است چون این دین که باید جهان را اداره کند چون این دین که ولتر و دیگران در آرزویش بودن ملاحظه بفرمایید کسوی دین را یک فلسفه کرده در چهارتوب بف... فلسفه آورده است و به دین هیچ گونه زایدهی قائل نیست کسوی در انتقاد از در همون تاریخ باز هم در انتقاد از استهمار پیروان به وصلی ملایان در مورد دنیای پس از مرگ می نفسد کس به دین متقده دین رو یک فلسفه می دونه در حد یک فلسفه البته فلسفه رو بنده می گویم همونطور که تعریف کردم آنچنان به دین متقده هیچ معجزهی برای دین قائل نیست هیچ معجزهی به محمد قائل نیست هیچ معجزهی به هیچ خدای قائل نیست و امامان رو هم به در سال 1320 دارم میگن به رسمیت قبول نمیکنند. در سخنان آیندمون کاملا به این مطلب خواهیم رسید در و معتقدم نیست که آقا میگه ما مردیم در, اون در آن ور زندگی ما یک دنیایی هست یک زندگی ادامه زندگیمون هست ولی اینکه گفتند آن زندگی چه خواهد بود بهشتی هست و جهنمی هست و غضب خداوندی هست به هیچ کدام اعتراض ندارد کسوی به خاطر اینکه دین رو تایید بکنه و دنیای بعد از مرگ رو تایید بکنه تایید بکنه به دو مطلب معتقد است در این دنیا به خدا معتقده و به بنابراین میگوید که دین چیزی است فلسفی و خداوند پیغمبرانش رو هم حمایت میکنه ازش این پیغمبرم یک فیلسوفو بیشتر نیست یک اصلاح بیشتر نیست برای آن دون... آن دنیا به سلا ثابت کردن آن دنیا هم به نهادی به عنوان روان معتقده گسبی معتقده که انسان با حیوان در دو نهاد مشترک نهاد تن و نهاد جان نهاد تن همون جسمی که ما داریم نهاد جان اون حرکات که از ما سر میزند مثل خستگی مثل گروسنگی مثل به اصطلاح خوابیدن و مسائلی از این قبیل میگه در اینجا ما دوتا بشر و حیوان مشترکه ولی انسان یک چیز اضافی هم داره اونم روانه خب من در اینجا باید یک پرانتزی باز کنم بگویم که این مطلب که با هیچ علمی دور نیست کسانی از خودش این مطلب رو در درآورده و خودش گفته در یکی از مطالبش می نویسد که در 15 مرداد ماه پانزده از تهران به تبریز میرفتم شبانه با اتوبوسی پشت سر راننده نشسته بودم در نیمه های شب به فکرم رسید که روان هم وجود داره خب این به فکر رسیدن ما میتونیم بگیم که یک حوثی بوده که به مرزه آقای کسوی رسیده کسوی هم خلاف داره اشتباه داره خیلی هم اشتباه داره بنابراین کسوی برای این که نشان بده برای این که دینی رو به صلاح در دنیا ثابت شده نشان بدهد و دنیای پس از مرگ رو هم تایید میکند به دو چیز معتقده در این دنیا به خدا معتقده به قدرت خداوندی خدایی که هیچ خدرت از... یعنی عملی اضافه انجام نمیده قدرتش لایزال از نظر کسده قدرت خدا ولی هیچ عملی انجام نمیده هیچ کاری که به عنوان موجزه باشه انجام نمیده خدا نیست که خواهیم دید در ها نشسته به عنوان زل جلال قدرتمند مستبد نشسته با مردمان با مردم خودش با امت خودش گفتوگو میکنه. در ادامه زندگانی هم برای اثبات ادامه زندگانی به روان عرض کردم معتقده. این روان هم چیزی که خارج از حیوانیت و این است که کسیوی معتقد که ما انسان که پس از مرد جسم از بین می روید ولی روانی هست در انسان که آن روان انسان رو برای ادامه زندگی راه نما می شود رنده در اینجا بخش 23 هرایزم رو تمام می کنم امیدوارم که در بخش 24 نیست دیننده خوبی در این برنامه باشید سپاس از شما